اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الاتى على الانسان حین من الدهر لم يكن شیئا مذكورا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ این خلقنا الانسان من امشجیم امشاج نبتلی فجعل می بنی را ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم جهت. او را شنبا و بینا قرار دادیم. این هد نه حسبیله و این کفورها ما راه را به او نشان دادیم. خواه شاکر باشد یا ناسپاس. این تدنا للکافین سلاسل و اغل او و سعیرا ما برای کافران. زنجیرها و قلها و شعلهای سوزان آتش آماده کرده این این الابرار یشربون من کأس کانمی زاجها کافورا به یقین ابرار و نیکان از جامی نوشند که با اثر خوشی آمیخته است عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجرا. از چشمهای ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می ساسند و آنها به نظر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند. وطیم و نافطع على حی مسکی او و و غذای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و ییم و ثیر میدهند إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم منک ولا شخوررا و میگویند: ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمیخواهیم خواهیم. این ناخافو میر ربینا عبوسا قمطریرا ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا به خاطر این عقیده و عمل خداوند آنان را از شر آن روز نگه می‌دارد و آنها را می‌پذیرد در حالی که قرق شادی و سرورند و, جنتا و, و در برابر صبرشان بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنها پاداش می دهد. متكين فيها على الأراائك لا يروون فيها شمس و لا این در حالی است که در بهشت بر تختهای زیبا تکیه کردهاند نه آفتاب را در آنجا میبیند و نه سر مارا ودانیت عليه ضللها وذلّلت بوقف و و, ذللت قطوف و, و در حالی است که سایه های درختان بهشتی بر آنها فرو افتاده و چیدن میوه بسیار آسان است و یطاف علیهن من و اکواب و و در گرداگرد آنها ظرفهایی سیمین و قده های بلورین میگردانند پر از بهترین غذاها و نوشیدنی‌ها. قواریر من فضة قدرها تقدير. زرف‌های بلورینی از نقره که آنها را به اندازه مناسب آماده کرده اند. و یسقان فيها كأس كنم زاجها زن جبیلا. و در آنجا از جامهایی سیراب می‌شوند. چلا از شراب طهوری آمیخته با زنجبیل است عینا فیها تسمى سلسبیلا از چشمه ای در بهشت که نامش سلسبیل است و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رایتهم اذا رایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا و برگردشان نوجوانانی جافدانی می گردند که هرگاه آنها را ببینی گمان میکنی مروارید پراکنده اند و ایده رأيت ثم رأيت نعیما و ملک کبیرا و هنگامی که آنجا را ببینی نعمتها و ملک عظیمی را میبینی. ثیاب سندس خضر و استبرق. و اساور من فضت و, سخاهم و سخاهم ربهم شرابا طهورا بر اندام آنها بهشتیان است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای زخیم و با دستبندهایی از نقر آراسته اند و پروردگارشان شراب تهور به آنان می نوشاند این هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم پاداش شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا مسلما ما قران را بر تو نازل کردیم ربك ولا تطع منهم أو كفورا. پس در تبلیغ و اجرای حکم پروردگارت شکیبا و با استقامت باش و از هیچ گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن و ذکر اسم ربک بکرتا و و نام پروردگارت را هر صبح و شام یاد آور. و, الليل له وسبحه طویلا و در ودر گاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی این ها اولای حمون العجلت و یذرون و یذرون و آنها زندگی زود گذر دنیا را دوست دارند در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها می کنند و و بدلنا ما آنها را آفریدیم و پیبندهای وجودشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را یک گورو هدی جاری می‌دهیم این هذه تذكره فمن شاء اتخذ ربي سبيلا این یک تذکر و یادآوری است و هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی‌گزیند و ما مشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان علیما حكيما و شما هیچ چیز را نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواهد خداوند دانا و حکیم بوده و هست یدخل من يشاء في رحمتي والظالمين اعد لهم عذابا اليما هر کس را بخواهد و شایسته بداند در رحمت خود وارد می کند و برای ظالمان عذاب دردناکی آماده ساخته